این داستان مردمان هوشیار روزی از روزها مردی روستایی چوب دستی از شمشاد برداشت و به همسرش گفت من به شهر میرم و سه روز دیگه برمیگردم گردم اگر چوب دار اومد گافهامونو بخره بزار اونها رو ببینه از دیویستر هم حتی دیناری کمتر نگیر همسرش گفت برو نگران نباش من طبق سفارش تو گاوا رو میفروشم وقتی شوهر از در بیرون میرفت با صدای بلند گفت تو گاهی مثل بچه ای هستی که با سر زمین خورده هرچی بهت میگن بعد از یه ساعت فراموش می کنی اگه سر این معامله خطایی ازت سر بزنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی پس هواستو جمع کن که کار دست خودت ندی صبح روز بعد چوب دار اومد زن روسایی حرف زیادی نداشت که بهش بگه. وقتی چوبدار گاف ها رو دید و قیمت و پرسید گفت اونا رو میخرم قیمتشونم خیلی ارزونه. بعد تناب رو از گردن گاوا باز کرد و داشت اونارو با خودش می برد که هنوز به در حیات نرسیده زن روسایی چنگ زد. آستین مرد چوبدار رو گرفت و گفت اول باید دیوی سرهم رو بدی بعد گاوا رو از در بیرون ببری. چوبدار جواب داد من امروز صبح یادم رفت کیف پولم و بردارم ناراحت نباش به جای ستا گاف دوتا از گاف ها رو میبرم و یکی رو اینجا میذارم تا تو اطمینان داشته باشی که حتما بر میگردم پولتو بدم زن روستایی گول حرفای چوبدار خورد و اجازه داد گاف ها رو با خودش ببره پیش خودش فکر کرد وقتی شوهرش برگرد و ببینه با چه زرنگی معامله کرده خوشحال میشه روستایی همونطور که قول داده بود بعد از سه روز به خونه برگشت. هنوز از را نرسیده پرسید که گاوا رو فروخته یا نه. همسر روستایی هم جواب داد. معلومه که فروختم. همون دیویستر همی که خودت گفته بودی. خودت بهتر میدونی که گاوا دیویستر همم هم نمی ولی من اونا رو آب کردم. چوب دارم بدون اینکه اعتراضی بکنه قبول کرد. روستایی پرسید. خیلی خوب. حالا پولا کجاست؟ زن جواب داد هنوز پولی به من نداده یادش رفته بود کیف پولش رو همراش بیاره ولی حتما پولش رو میاره چون وسیقه گذاشته به خاطر وسیق که شده پولش رو میاره شوهر پرسید چه وسیقه گذاشته؟ زن جواب داد یکی از گاف ها رو اون تا زمانی که پول دوتا گاو و نپردازه نمیتونه گاف گاو سومی و میو با خودش ببره من با زرنگی ترتیبی دادم که کوچکترین گاو اینجا بمونه. چون خورد و خوراکش از اون دوتای دیگه کمتره. مرد از شدت عصبانیت چوبشو بلند کرد تا همونطور که گفته بود اونو کتک بزنه. ولی پشیمون شد و سرش داد زد و گفت: دلم برای تو که احمق ترین موجود روی زمینی میسوزه. من می خوام دوباره به شهر برم و سه روز دیگه برمیگردم گردم. اگر آدمی پیدا کردم که به اندازه تو احمق باشه از تنبیهت صرف نظر میکنم. اما اگه پیدا نکردم وای به حالته. مرد روستایی رفت و در جاده اصلی روی یه تخت سنگ نشست و منتظر فرصت شد. همون موقع عرابه رو دید که از جاده میگذشت و زنی روی نیهای داخل اون نشسته بود و افسار گافهایی رو که ارابه رو می به دست داشت. مرد فکر کرد فرصت خوبیه تا این زن و آزمایش کنم ناگهان جلوی عرابه پرید و شروع کرد دوروبر اون دویدن انگار که نمیدونست باید چی کار کنه زن پرسید پدربزرگ دنبال چی هستی از کجا اومدی مرد جواب داد من از بهشت به زمین افتادم نمیدونم چطور دوباره به بهشت برگردم آیا میتونی منو به اونجا برسونی زن جواب داد نه من که راهشو بلد نیستم حالا که تو از بهشت اومدی از حال شوهر من خبر داری؟ اون سه ساله که در اونجاست لابد اونو دیدی؟ مرد جواب داد معلومه که اونو دیدم ولی در اونجا هم همه افراد راضی و خوشحال نیستن شوهر در اونجا از گوسفند و حیوانات نگهداری میکنه حیوانا بین کوه و دره این طرف و اون طرف میرن و بنده خدا شوهرت هم دنبال اونها میدوه. به خاطر این کار سنگین لباساش پاره شده و کم مونده از تنش در بیاد. حتما میدونید اونجا از خیات خبری نیست. به ما گفتند به خیات ها اجازه ورود به بهش نمیدن. زن فریاد زد. اصلا فکرشم نمی کردم که بنده خود و اینطوری توی درد سر افتاده باشه. حالا میخوام خدمتتون ارز کنم که اگه شما صبر کنین میرم و لباس مهمونی شوهرم ما از کمد میارم تا براش ببرین که اونجا ظاهری محترمانه داشته باشه مرد گفت هیچ کس نداره همراه خودش لباس به بهشت ببره چون بیشتر وقتا هنگام ورود لباس آدما رو در میارن و دور میریزن. زن با صدای بلند گفت خب من دیروز گاوارو فروختم و پول درست حسابی دست و پا کردم این پول و براش میفرستم اگه کیف پولی همرات باشه وقتی میخوای وارد بهشت بشی کسی متوجه نمیشه مرد که تفره میرفت گفت اگه چاره دیگه نیست این کارو براتون انجام میدم زن گفت یکم صبر کن تا برم کیف پولم و بیارم خیلی زود برمیگردم زن همونطور که حرف میزد عربه رو میروند. مردم با خودش فکر میکرد. به نظر میرسه این زن دست همه احمقا رو از پشت بسه. اگه اون واقعا برگرده و پول بیاره همسر من اون داده. خیلی طول نکشید که مرد دید زن در حالی که کیف پولی در دست داره دوون دوون داره میاد. زن تا رسید کیفشو با دست خودش در جیب مرد گذاشت. بعدم کلی از لطف و مهربونیش تشکر کرد و رفت. وقتی زن به خونش برگشت، پسرشو شدید دید که تازه از مزرعه برگشته. با خوشحالی تعریف کرد چه ماجرای غیرمنتظره‌ای براش پیش اومده و اضافه کرد چطور خوش اقبالم که اون مرد و دیدم و فهمیدم شوهر بی به لباس و پول نیاز داره و تونستم به وسیله اون مقداری پول براش بفرستم. پسر با شنیدن این حرفو یک پارچه خشم شد و با صدای بلند فریاد زد آدما که هر روز از بهشت به زمین بر نمی گردن من الان میرم بیرون تا این مرد رو پیدا کنم چون اون می تونه احوال بهشت رو برام تعریف کنه و اینکه اونجا چه کار میشه کرد بیرون رفت و اسبشو زین کرد و به سرعت از اونجا دور شد راه زیادی نرفته بود که مرد زاره رو دید اون زیر درخت بیدی نشسته بود و پول ها رو میشمرد. جوان پرسید مردی رو دیدی که به تازگی از بهشت اومده باشه؟ مرد جواب داد بله اون داشت برمیگشت. حتما تا حالا جاده بالای کوه که جاده میون باره رد کرده. اگه به سرعت بری حتما اونو میبینی. جوان گفت من تمام روزو کار کردم تا اینجا هم که با اسب اومدم حسابی خسته شدم. اگه اون مردم میشناسی خواهش میکنم سوار اسب من بشو و اونو پیدا کن و به اینجا برگردون. مرد زاره با خودش گفت اینم یه آدم دیگه که سیماش حسابی قاطی کرده. بعد با صدای بلند گفت چرا به شما لطفی نکنم؟ بعد پرید روی عصب جوونو از اونجا دور شد. جوون همونجا منتظر موند. اونقدر منتظر موند تا شب شد. ولی اون مرد برنگشت. بعد با خودش فکر کرد لابد مردی که دنبالش بوده خیلی عجله داشته که هرچی زودتر به بهشت برسه و بدون تردید مرد زاره اسب و به اون داده که توی بهشت بده به پدرم. جوان با این تصور به خونه برگشت و اون چرا که اتفاق افتاده بود برای مادرش تعریف کرد و دست آخر گفت بدون تردید این مرد اسب و به پدرم تحویل داده. و اون دیگه مجبور نیست پیاده بین کوه و دره دنبال گسفندا بره زن جواب داد خیلی خوب شد تو هم که هنوز پاهای جوانی داری و میتونی پیاده راه بری به این ترتیب اونا زرر رو پذیرفتند مرد زارم به محض اینکه به خونه برگشت اسبیو که جوون بهش قرض داده بود در طویله کنار گاوها است نزد همسرش رفت و گفت تو زن خوش اقبالی هستی از وقتی بیرون رفتم تا حالا دو نفر رو پیدا کردم که عقل و شعورشون خیلی کمتر از تو بوده بنابراین تو رو تنبیه نمی کنم تا دفعه بعد ببینم چی کار می کنی بعد چپق خودشو بیرون آورد و اونو روشن کرد و گفت معامله خوبی بود یه اسب اصیل و کیفی پر از پول در ازای دوتا گاو لاغر و مردنی اگه حماقت همیشه چنین فرصت‌هایی برام به ارمغان بیاره باید از زنی مثل تو شاهانه نگهداری و پذیرایی کنم بعد به زنش رو کرد و گفت حتی اگه کم هوشم باشی برام عزیز و دوست داشتنی هستی